أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری جلسه اول موضوع مالکیت فکری یا مبانی فقهي حقوق مالکیت معندی از مباحثی است که سابقی چندانی ندارد و به تازگی در کشور ما و در حوضه های علمیه و حتی مراکز دانشگاه ما مورد بحث قرار گرفته است البته در رابطه با مسئله مالکیت فکری اگر ریشه هاش رو بخوایم پیدا بکنیم چون علم و تکنولوژی گسترش روزافزونی پیدا کرده و به دنبالش اختراعات و اکتشافاتی حاصل شده این علم و فنون جنبه مادیش چهره جدیدی از خودش نشون داده است و مالیت پیدا کردن یک عقیده و فکر در محافله حقوقی و بین المللی خودش رو نشون داد ازو برای تعیین محدوده حقوقی فکر و ایده که باعث خلق طرح‌های صنعتی، تجاری، فرهنگی، هنری میشه، آمدن عنوان مالکیت فکری یا معنوی رو انتخاب کردند تا صاحبان این فکر از حقوقی مشابه حقوق مالکین مادی برخوردار بشوند. آغاز این بحث کاملا مشخص نیست از کجا بوده است ولی اولین کشورهایی که این بحثها در اونها شروع شد انگلستان و فرانسه بودند. چیزی که باعث دامن زدن به این بحث شد تحولات سیاسی اجتماعی فرهنگی بود که از قرن 16 هم به بعد در کشورهای غربی و متمدن شخصان اروپا رخ داده بود خب قواعد حقوقی در بحث شکل گیری و تکامل خودشون تابع شرایط و اقتضاعات خودشون حرکت میکنن و تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در به وجود آمدن این حقوق یقینا نقش داشتند. در سطح بین‌المللی تا چند قرارداد مهم در حمایت از مالک فکری منعقد شده یکیش معاهده پاریس است مربوط به فرانسه پیمان نامه برن است مربوط به سوئیس که اولی در سال 1883 بین 13 کشور جهان به امضا رسید که از سه مورد حمایت می یک اختراعات دوم علائم تجاری و خدماتی و سوم طرحهای صنعتی. پیمان نامه بر هم دو سال بعد برای حمایت از آثار ادبی و هنری شکل گرفت که این سه مورد رو شامل می شود. یکی رمان ها و داستان های کوتاه، اشعار و نمایشنامه ها، دوم ترانه ها و اپراها و موسیقی ها و سونات ها، و سوم ترها، نقاشی ها، پیکر تراشی ها و آثار معماری و معمولا مالکیت معنوی در دو بخش کاملا مجزا مورد مطالق قرار می گرفت یکی مالکیت صنعتی دیگر حق و تعلیف خوب. اون اونچه که در گذشته ما بوده است و در همه جا رسم بوده که پدیده فکری بیشتر موضوع حقوق معنوی بودن و عرف جامعه مخصوصا متدینین پدیده های فکر رو به منزله ابزار معیشت و اینها در نظر نمی گرفتن امر تعلیف و تحقیق و خلق آثار علمی و ادبی بیشتر مظاهر مسائل اخلاقی و معنوی بودن اما کم کم در کنار حق معنوی یک جلوه دیگری آشکار شد که به موجب اون هر کسی که صاحب اثر است، یک حق مالی هم بر اثر این کاری که خلق کرده برایش به وجود می آمد لذا وقتی ما از حقوق به وجود آورندگان و آثار فکری حرف می زنیم در حقیقت دو چهره حق مد نظر است یکی حق معنوی دوم حق مادی یا مالی در رابطه با نامگذاری این مالکیت ها اسامی مختلفی بیان شده است و جعل شده بعضی ها اسمشان مالکیت معنوی بعضی ها حقوق فکری میگن بعضی میگن حقوق آفرینش های فکری بعضی میگن حقوق مالکیت فکری و تعبیرهای دیگر مالکیت های غیر ماددی. حقوق بر اموال غیر مادی، حقوق جلب مشتری و تعابیری از این سنخ خب در رابطه با کشور ما و جامعه اسلامی ما چند دهه است که این بحث به مراکز علمی و اکادمی ها کشیده شده در حوزه های علمی و دانشگاهی چه از منظر حقوق چه از نظر ف... منظر فقه مورد بحث و نقاش قرار گرفته است بعضی ها موافقند بعضی ها مخالف و این بحث اونقدر دامنه داره است و از ارزش اقتصادی میتونه برخوردار باشه که مورد توجه دولت ها واقع شده به طور که بعضی از کشورها حتی مانند چین یه رشته تخصصی تا درجه دکترا هم برای این قرار داده اند. اما در فقه و حقوق اسلامی این مسئله نه سابقهش خیلی کمه ولذا بحث از این مسائل رو با عنوان مسائل مستحدثه یاد می و با این تعبیر از او ذکر می در رابطه با این مسئله خوب دو تا دیدگاه مقابل هم وجود داره بعضی مخالف این حقوقند و پنج از شیش دلیل هم اقامه کردن براش بعضا موافق با معالکیت معنوی هستند. حدود هشت دلیل برای جواز و صحت این حقوق اقامه کردن که اینا همه به صورت مستقل و جدا باید مورد بررسی قرار بگیرد. اما در رابطه با تعریف مالکیت فکری یا بفرمایید مالکیت معنوی که بعضی‌ها مالکیت معنوی رو زیاد درست نمیدونن میگن وقتی میگیم معنوی مالکیت معنوی بیشتر سیر در عالم معنا و باطن رو در ذهن تداعی میکنه و ما رو از موضوع بحثمون دور میکنه بلا معنوی معالکیت معنوی معنه شامل بحث ما می شود، اما معنه اغیار نیست ولی ازا چون به جاهای دیگه سرایت میکنه، بحث تحذیب نفس و ارتباط با عالم معنا و اینها رو شامل میشه که یقینا مورد بحث ما نیست و در دنیا مورد بحث نیست ازا بهتر است از که ما از کلمه مالکیت فکری استفاده کنیم هم که در انگلیسی بشکن انتلیکچال پروپرتی پروپرتی معنای مالکیت مال و شیء است و اینتلکچوال هم معنای وصفی دارد یعنی یک فرد توانایی فکر کردن دارد در یک روش اقلایی و میتواند اشیاء رو بشناسد یا دلالت میکند بر اینکه میتواند توانایی خودش را بر شناخت اشیاء بکار بگیره خب به طور خلاصه هر فکر یا ایده خلاقانه ای که منجر به طرح یا تولید محصولی بشود که مورد استفاده جامعه قرار بگیره این در حوزه مالکیت فکری یا بفرمایید مالکیت معنوی قرار میگیرد گیرد خب این اصطلاح رو اولین بار یک حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و تعبیر هم گفتیم مختلف است در مقام نامگذاری چه بگذاریم هر کسی نام خاصی را برای او به کار برده ولی در همه این تعریف ها مالیت و مالیت داشتن فکر و ایده مورد توجه بوده و جزء تعریف حساب می شود در جزء مقدمات مالکیت فکری هست خب در رابطه با اینکه مالکیت فکری چه تعریفی دارد تعریف‌های مختلفی کردهاند. مثلا بعضی ها آمدن اینطور گفتند حقوق مالکیت فکری مجموعه قواعد و مقرراتی است که سیانت و حفاظت از تولید کنندگان اموال فکری را هدف نهایی خود قرار داده تا از این طریق برای آفرینندگان آثار علمی ادبی، هنری و صنعتی انگیزه کافی ایجاد بکنند همطور که میبینید در این تعریف اند دو تا کلی برای مالکیت‌های معنوی قراردادنی که مالکیت‌های ادبی و هنری، یکی از مالکیت‌های علمی و صنعتی. خب در رابطه با این مالکیت در باب حقوقی که به وجود می‌آورد بحث کردن آیا این مالکیت باعث ایجاد حقوقی برای صاحب اون اثر می‌شود یا نه؟ اومدن حق و اینجوری تعریف میکنن حق سلطه شا صاحب حق است بر متعلق حق به طوری که صاحب اون حق میتواند تکلیف را از مکلفی درخواست نماید و یا حتی آن را از وی ساغت بکند لذا این حق خالق آثار و اموال فکری است که اون فرد آفرنده اثر است میتواند اعتراض کند به دیگران که چرا از آثار رو استفاده میکنند و اجازه دادن خودش رو شرط بکند خب در رابطه با تعریف ها یکی از تعریف ها این است میگن حقوق مالکیت فکری که بحث ما هم سر همین حقوق است که البته اگر مالکیت ثابت بشود این حقوق هم باید بحث بشه آیا ثابت میشی یا نه؟ گفتن حقوق مالکیت فکری حقوقیست که به صاحب آن اجازه میدهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحسرن استفاده کند تعریف دیگر میگن حقوق مالکیت فکری مجموع است. که مختص به شخصیت صاحب حق بوده و به فعالیت فکر او ناظر است. تعریف سوم این است که حقوق مالکت فکری مزایای قانونی و غیر مادی مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری است. که به موجب آن وی برای همیشه از یک دست حقوق خاص برخوردار است تعریف دیگر این است که حقوق مالکت فکری حقوق و امتیازات غیر مالی است که مربوط به شخصیت پدید آورنده و برای حمایت از او و از شده است خب طبق تمام این تعریفی که شده است مالیت این دست از حقوق تأیید شده این در حقیقت فعالیت های فکری در زمره اموال قرار گرفته است که بر اساس قوانین حقوقی مالکیت بر اینها مترتب می شود. و لذا برای استفاده از اینها طبق قوانین اجازه مالک لازم است خب در این بحث مالکیت حقوق فکری یا بفرمایید معنوی بین فقها اختلاف است که آیا واقعا این امور خلق آثار فکری و معنوی آیا باعث ایجاد حق برای مالک و صاحبون اثر می شود یا نه که آثار و حقوق رو بر او بار بکنیم گفتیم فقاها کلن و مجموعن ملاحظه بشوند اینها ها دو دسته شده اند و ادهی به عنوان موافق و ادهی به عنوان مخالف نظر دادهاند و مطابقه با او آثار رو مترتب می کنند. بررسی ما بر این مبنا قرار می گیرد که اول نظریه مخالفین رو بررسی کنیم، اون کسانی که چنین حقوقی رو قبول ندارند، حالا منشش هر چی باشه؟ یا به خاطر اینکه خلق آثار فکری رو مال نمی دانند، و معتقدند اینا مملوک انسان نمیتواند بشود و انسان نمیتونه مالک این امور بشود یا نه برفرزم که مالک اینها باشد آثار مالکیت مادی را ندارد چشم ما جمعاً 5 6 دلیل اینا اقامه کردند که باید بررسی بشه بعد از او باید بریم بحث کنیم روی مبانی توجیهی مالکیت فکری که آیا اصلا آثار فکری و معنوی نیتونن موجب مالکیت صاحبش بشوند یا نه و این مبانی چیست و در مرحله سوم بحث کنیم از اون کسانی که موافق این حقوق هستند و عدلهی رو که در این مقام اقامه کرده اند که مجموعا تقریبا هشت دلیل در این زمینه طرح شده است و به این ترتیب این بحث به جایگاه حقیقی خودش برسد که آیا می توان برای مالکیت فکری در فقه و حقوق فقه حقوق امامیه آیا مبنایی پیدا کرد و مورد تایید قرار داد یا نه؟ البته بین عمده حقوقدانان در غرب که همه قبول دارند و در کشورهای اسلامی هم امدتا خیلی اینو قبول دارن و بین فوقه ها که اختلاف شدید است و در رابطه قبول عدم قبول او دو جبهه کاملا مخالف همدیگه به وجود آمده است که آیا در این باب می شود ما قائل به حقوق مالکیت فکری بشویم یا نه بر اساس عدله هم نقلی و هم عدله عقلی که انشاءالله به ترتیب و مفصل اینها مورد بحث قرار گرفت اونایی که مخالف هستن مجموعاً پن شش دلیل رو اقامه میکنند. دلیلشون یکی میگن ناسازگاری با قاعده سلطه دیگر عدم امضای شارع دیگر ناسازگاری با رسالت و قداست علم دیگر غیر قابل تملک شخصی بودن دیگر نهی از کتمان علم ششم وجوب ارشاد جاهل و هفتم اینکه اموال معنوی در زمره اموال حکومتی حساب می شود. شخص نمیتواند تواند حقی نسبت به او داشته باشد. که مجبور شد هفت دلیل. اما اون کسایی که موافق با مالکیت معنوی هستند اونها هم ادله فراوانی اقامه کردند. یکی قاعده لازرر دوم قاعده صحت سوم قاعده سبق چهارم بحث نظریه منطقة الفراق پنجم اختیارات و تصرفات ولایت فقیه ششم ادله عموم عوفو بالعقود هفتم سیره أقلاء هشتم قاعده سلطه نهم، حرمت تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها البته این در پیش شیعه است اما اهل سنت علاوه بر این بر مطالب که بیان کردیم هشت نهتایی که بیان شد دو دوتای دیگرم اضافه کردن یک مساله مرسله و دیگری صد زرایع که با اینها اثبات میکنند حقوق مالکیت‌های های فکری را خب از این به بعد ما با واجه مالکیت فکری سر و کار داریم اگرچه که مالکت معنوی هم اشکال نداره و این استدلال که مالکت معنوی منظور معنایز عام که شامل مباحث اخلاقی سیر و سلوکی و اینها می شود و توجه به عالم معنا و باطن منظور است جواب می که خیلی کلمه معنوی اصطلاحات فراوانی دارد یه موقع معنوی در مقابل مادی است بله اون معنوی وسیعی دارد یه موقع معنوی نه منظور در عباره اموری بحث میکنیم که خودشون مادی نیستن ولی از آثار موجودات و وجودات مادی هستن اگر معنوی رو به این معنا بگیریم این درست با مالکیت فکری کاملا منطبق است و حتی اعمزو هم میتونه باشه و شامل مسائل عرفانی هم نشه این اموری که به ذهن انسان خطور میکنه و رو بدون فکر کردن و حد زدن به وجود آمده با خطورات ذهنی انسان چیزایی رو کشف میکند و به صورت اتفاقی به وجود می آورد. اونها هم در زیر مجموعه مالکیت معنوی میتواند قرار بگیرد معنوی به این معنا که یعنی مادی نیست ولی مرتبط با ماده و موضوع یا متعلق او امر مادی میتواند باشد به هر جهت برای اینکه تشطت در تعبیر پیشنیاد از این به بعد دیگه مالکیت فکری مد نظر است که عمدتا در رابطه با خلق و ابتکار عقاید بینش ها،, روش ها و متودهایی که در رابطه با استفاده از اشیاء مادی به کار می رود، مده نظر که مورد استعمال قرار خواهد گرفت انشالله از جلسه بعد در رابطه با ادله مخالفین شروع به بحث می کنیم و همه اینا رو مورد ملاحظه قرار خواهیم داد تا در نهایت به یک نتیجه منطقی و اطمینان بخش بتوانیم برسیم صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین